آله طیبین و طاحت منصومین و لنطا دائمت و اللهم فهمان جمعی المشتقین و رحمتی و رحمتی و روزی که مخموم اصلاح راجبه مقدمه بحث خبرواقی خوندیم. از که که ما بحث خیلی مختصر. مقدمه ای رو راجع به بحث خود خبر رو و یکی از اشکالاتی که معروف بود سابقا و اون این که موضوع ادم اصول ادله عربعه و بحث از خبر ربطی بر عدله عربعه نداره ای این اشکال معروف ایشون جواب دادن اولا که دلیلی نداریم برای اینکه موضوع موصول امر جامعی باشه بین جمعی موضوعات مسائل امر جامعی زدن با اینکه که خصوص عدله عربه نه اصلا توضیح نمیده خب پس محیار در الموصول چیه همین مدرم بعدم میشونم بینید که یعنید ظاهر عبارت میخوره با اون که در کپایی آمده که موضوع عمر واقعی سال رو اسمش نزدنی جامعه بین موضوعات جمعی مسائل بعدم هم حاضر بنامان التزام به لزوم موضوع لکل این و الله که ما هوا صحیح فلا موضوع لعلم الاصول اصلا الموضوع کل این موضوع نداره و با اون بالاش قدیده می سازه و علمیت لعلم لا تتوقف و علا وجود موضوع این بحثی بود توضیحی هم داده من حالا چون کلمه محور رو به قابلن در وسط کلم درش اشتباه بود ما توضیح مطلب رو ارز کردیم بحث معروفی بود در بحث علم و تقسیم بندی علم و به هم مواهزه که کلا مروح به علوم میشه نه به لحاظ ورود در مواهز علوم روابط علوم علم ها و تقسیم بندی و تعدد و تنوع و تقدم و تأخر در جهات مختلفی که گاهی آدست تبدیل به مروح تمامیه میکنه در آخر منده و فی ما بعد تقریبا یک واحده علمی و این بحث مستقلی و اینا فلسفه علمی و خلاصش اینه که در بازه غلوم و تقسیم علوم و علوم و اجزای علم اینها صحبت هایی میشه مثل صحبت هایی دیگه هم داره که جاش اینجا به ما در خلال بحث هایی مناسبه که آمد و یکی از بحث های معروف که تمایز علوم رو به تمایز موضوعات می معروف بود این محله و ارز کردیم که افرادی مثل صاحب جماعی زادن شد استادم متاثر بهشون هست اولون رو به تماعیز منظوعات میدنیشون به تماعیز افراد میدنن برسن برسی با برس موضوع مثلا موضوع نداره این از اون چیزی که شده مثلا یه مقاحثی و به میگن این مقاحثی و متعارف شده بران که اصول شده, شده, شده, شده, شده همونی که واردیم نداریم برای موضوعاتی میام صفر تایو متعددی شده و در اینجا هم اینطور نیست که حالا یک استاندارد علمی باشه که یکی کسی چیزی رو بگوید و دشوده که کشورش تا انسانه بحثی است که به صلاهی مقداری دوزهعله ابدالی انسانه نه دوزهعله اقتصادی یعنی اگر گفتیم تمام علوم چیزها رو برای موضوعات راهش سختتری به نظر خودون تشخیص میدهیم برای تشخیص علوم و تمیز علوم و تمایز علوم از کلم که بعید نیست این حلک رو که مرموم آزیا و عدیه قائل هستن قائل بشیم وامی که در علوم حقیقی موضوع میخواییم و موضوع محور بحث نیست یه کلمه محور رو به کار روزن بز یا موضوع این محور بحث نهیم ساده انگاری دارم بعد حال علوم حقیقی مثل نجوم مثل جغرافیا مثل پرسون زنگی شناسی مثل طب این علوم حقیقی موضوع میخواد به حقیقته این بحث از موضوعه بحث از عوارض ذاتی باشه یا مطلق عوارض باشه یا در عوارض ذاتی تصرف بخونه بحثه جانبی دیگریست بحثه دیگریست بعد حال علوم حقیقی که جنباد این واقعیتی هستن به فرهنگ ها و تمدن ها و زمان ها عوض نمیشه بدن انسان بدن انسان یه فهمون به خلاف علوم اعتباری که به زمان, به زمان عوض میشه به خصوصی ها عوض میشه به اعتبارات عوض میشه علوم اعتباری موضوع ندارن موضوع با مثلا اینا آنگذر همچون که در ت بدن انسان موضوعه گفتن در نهرم کلمه و کلام یا بایل مردموهای میشینی لذا یعنی چون کلمات مرکب میشه موضوع هم روزن بسیط باشه. اصلا که نه اینطور نیست یا در اصول موضوعش ادله اربعه باشه کماقیل یا موضوع حجت باشه کماقیل نه اینطور نیست اصلا علوم اعتباری دنبال موضوع نیستند. علوم اعتباری دنبال اغراض و اهداف علل غاییه دنبال او هستند نه دنبال موضوع و نظام ممکن است که موضوعات متعدد داشته باشم سه نکه بحثش هم در موضوعات هم رو مثلا در علم اصول من توضیفاتش رو از کردم شما در اسلام علم فقه خیلی زود شروع شد شما در حوضه های یه فکر مختصر مکنیم بعد اصول بکنید که قبل از این جوار به فقه بشید اصول اما در واقع تالیشی اینطور نبود در اسلام اول فقه شد از همون زمان صحابه فرش شروع شد و از زمان تابعی بچه های بعضی و صحابه سعیده بمسید. نه اول فقه های سمعه مدینه به حساب میان خود صحابه ادهی از صحابه راوی نیستن اشتباه نشید اینا فقه ها هم هستند. از خود صحابه خود آیش هم و امان فقیه حسابشون کنن از اون مجرد راوی باشه یعنی صحابه هم راوی هم هسته من فقیه هم اصلا از ها در ه با عنوان باقاها نام میبرن اشتباه نش لذا حرکت فر از سر در کلیه معارض دیمی تفصیل یکی فر خیلی زود شروع شد در دمیه اسلام خیلی زود شروع شد این دوتا خیلی سریع شروع شد و هم برکن سریعا این بحث جا افتاد تا حدود سال پنجه سال سال شست هست هست یواش شواش بعد از گذشتن این فاصله زمانی به فرق تدوین و حصول افتاد به وقتی خاطر اصول تدوین کردن دنبال موضوع نرسیم. خوبه. دو اون هدف و رفتن است. هدف و این بود که قدرتی بتوانم یعنی خوب در قواعد رو پیدا بکنند که به خواننده در فرآیند استدلال یا استدلال یا استنتاج استنتاجی فرعی بکنند، و این قواعد هم اختصاص بی یک واحد نداشته باشه سریان داشته باشه در فعل چون بعضی از در باب فزله معرفت بعضی از قواعد نجومی مثلا لازم بود اما را نمیخواست تو اصول بگن چون سریان نداشت تو باب قرنوسه تو باب وقت بود سریانی اینطور نداشت معيارش این بود ابهاسی باشه که سریان داشته باشه این بحث ها و از کردیم ها هم داریم جلد یک مسادر تشریحی بود که از زمان سهارمت شد آلا اسمش اما بزرین حجت مثلا قیاس بزرد مسادر تشریح هست اجماع هست اگر کتاب هست حیقت کتاب چیه سنت چی جوری رابطه کتاب سنت این مواردی بود که با عنوان به اصطلاح بنده حجت سبوتی و چون کتاب سنت سو دقیق سمیه می درستن و قیاس اجماع و دلیل عقلی می‌دونستان همین تقسیم بندی ها مثلا در باب حدود منبار مثال می خوام بزنم در باب حدود در باب دیات در باب زمان معتبر چه کفاره معتبر چه دیو با قیاس نمی‌شه فهمید حدود رو با قیاس میگن گفته اینا توقیفی هستند فقط با کتاب و سنت باشه اصطلاحیه مثلا ال حدود توقیفیان یعنی اومدن تقسیم کردن چه تقسیم بندی کردن چیزهایی ممکن است با قیاس و دیروز توضیح دادیم عدده سمعیه کتاب و سنت بود بعد چیزهای دیگه بعد اضافه شد چون اون هم در بکنه سنت قول صحابی یا قول چند نفر از صحابی یا قول همه صحابه یا قول عقل مدینه هر کدوم به این معیارهی و عدده سمعیه هم نمید هم یواشه زیاد شد اصلش قیاس را اجماع بود زمان اومد یواز زیاد شد شاید اولین چیزی که اضافه شد استحسان بود تراسی در بولارون مسعود. استحسان اضافه شد مسائل محسنه اضافه شد صد و اضافه شد این ها و شورا که اگر مثلا مجلس شورایی تشکیل دادن و اختیار کنن محلبی را های محلبش مکن اداری شورا اضافه شد نه در مجموعه کتب اهل سنن تمام اینها محل بحث فراگه پس شذیه که مصادر تشری که الان عرض کردیم نقلی و عقلی چند فرلیش نروکتم چندا معرفی کنیم و تعریفشان مصادر بحث دیگری در اصول به معنای طرق وصول به مصادر تشری مثلا من مثال نقل می‌کردند در قرآن ابن عباس یا ابن مسعود آن رو فبستانت از تون بهنه الا عجلین الا عجل مسموه ها تو قرآن نیچه لسه مسموه میگه میشون قراعت کرده این بحث مذرم یه کتاب با این قراعت ثابت میشه سؤال رو هم اصلا نهرهی سبوته کتاب ببینید پس بحث طرق اثبات اختصاص به سنن نداشت کتاب هم بود اجماع هم بود یه واسه هاش آمدن اجماع منقول و خبر واحد هم هست. این بله خب که من عقل توشی نه باید معنون را داره عقل درد بکنم معنون که این فلانی گفتی عقل من اینجور گفت ما عقل درد بکنم مثلا یه عقل بگذاریم کنا بسائل رسول به مسادر تشریف این هم به اصطلاح یک قسمت دوم اصول شد که ما اسمشی بسیدیم حجت اثباتی رضا اگر بخوایم بگیم تقریبا در اصول موضوعی داریم همون حجیده به دومه یکی مسادر تشریق یکی طرق اصول به مسادر تشریق راهایی که ما رو برسونه به مسادر تشریق و کیفیت اصول باید ارس کردم باز هم اگر دقت بکنیم علم اصول منحصر این موضوع نیست این مهرت هدف در شما دنبال باید بوده اون غایت، اون قدرت شما برد استنباط احکام افکردم مهمترین نقطه ای که در استنباط احکام از زمان صحابه خود دقیقه کنی محصف شد یعنی حقیقتا این اصل این بود موضوعاتی بود که میگوستن حکم در شریعت نداره چون ای که حکم در شریعت داره خیلی کمه پس مثلا فروش خمره رو فروش میگوستن روایت هستی نفسو شیلم با میسان با این که که فقط خود خمر رو فروش ن حالا تفسیر روایت از سنت در بود اما من انگور می که این آقا, این آقا می نوشن که شراب بود. به کارخانه شراب‌سازی انگور, انگور می به شخصی که شراب بده به اصطلاح کارخانه ای که من می دونم قطعاً این شو شراب بده نه اینکه به شکلی خونه می اجاره میدن برای فروش شراب خونه وی اجاره ببین اینا همه موضوعات جری بود اجاره ال بیع به بیع اجاره اون که در دنیای اسلام با شروع برو شدن این بود اصل اول هشه ها ریشه های و سری کردن در اینجا دوران کلی برن دوران کلدی دو ها دو بعد خصوصیات توضیح توضیحه یکی راههایی رو که قانونند شد ومثل این عمل حرامش رو مقدم حرام, حرام یعنی قانونند شود یکی هم سریع کردن موردی استفاده بکنن مثلا اینجا این نکته داره اینجا این نکته رو بذارید. مثلا موردی استفاده بکنن. فرض کنید مثلا به صورت اگه ذیلاوت که آب و رو بکشین، آب چاه پاک میشه. پس لایه‌هایش هم پاک میشه. چون حالا دل و آبه دل به آب میگشه، آب به میززه، خود دل هم پاک میشه، خود تن هم پاک. ببینید اینا موردی اسمشه. موردی‌ها در شعر گذاشتن، قوالدکویی رو اصول ورده. البته اینا در اصلا ترنیجا به مسئله وسطی هم برکورد کردن که به مسائل فقری و حصولی قرار مزید اسمش و اسمش رو اهل بیشتر از اشباه و نظاره گذاشتن تعدیر و ما تغییر به قواعد فقر کردیم مثل آنه و هرام آنه و اس اینا رو من توضیحات رو شد سابقا از کردم البته قواعد هم بیشتر برای شموعی بود که در حصول نیایتید وسطی شد مثلا لازره رو آیون ما الان در قوائد فقیلی متعرض می اما در کسیب اصولی ما بحثی ما بلازدارم ندارم مستقل بله آخر بحث اشتغال برازی اشتغال در رسائل مناسبتی شهر شده آیون به این اونجا بولن. ولی مناسبی در من در آخر ها در سارز و اصولی شهر متعرض و قادر فراغ و قادر کجام این حرف های شده بی این مناسبت این چندتا خواهده هم تو زید استساق آنه متعرض شدن لیکن بحث کبریش کبرویش این نیست بحث کبرویش اینکه بلاخت قواهده فرط کجا میاری؟ بلاخت قواهده فرط رو نجیب میخواد دیگه فعلاً بیشتر داریدن از که رو جدا میکنن واسه از توان اهل سلطن از دارن اشباه و نظاره هم دارن به این اشعار و در 4 مذهب دارن مالکی ها دارن حنفی ها دارن, حنفی ها, دارن حنبلی ها اونی که تقض نظر من شاید همه شده که من اجمالا دیدم همه جدا ایران مال شافعی مال سیورکی که شافعیه به نظر که از بغیا اومد به سنت نوشته یکی دو تا هم در همه تا اثر به نظر مال ایشان مثل پدر یهدی ابن سعید حلی هم کتاب در من اشباهن نظر داره اون قواهد فرمی ما هم داریم در منه هفته هم هشته هم شیش هم هفته نظر اون بحث دیگری اون بحث قواهد فرمی اندر که به مقام من بازه این بحثیم باشم اینجا اینجاییست چون کراقن از خیلیم بحث ها رو دیگه توضیح و نسبت ها مثل یواشواش بحث تعارض یه بحث بسیار بسیار مهم در فقه این از همون اول به اصطلاح آراب بود بحثیست که ما غالباً از اش تحبیر به فضاها میکنیم مثلا اول, اول وقت بره نماز بکنه تو مسجد این ثوابش بیشتره مثلا بره اول وقت نماز شو بکنه ثوابش بیشتره اینه تو مسجد دیر نماز میکنن بخواد بره مسجد ثواب اول وقت میره ببینید این ما در فقه زیاد داریم فقه هر صحبتش که یه جردش اختزام میکنه این عرجه باشه یه جردش اختزام میکنه و عرجه باشه و الاخرین نستاد به این عدله اگر تضاها واقع کن تا عرضی واقع شد اینا هستی تدریجن که افغاست اصول جا باز کرد و نظام رو دقت بکنیم تدریجن افغاست اصول از مهوری کتاب و سنت با خود به معمن آم هم خارج شد یعنی اینطور نیست که شما بیهن اوهاس و رسول جنبال غرز, هستی؟ غرز در محور دلیل سمجی و نقلی باشه از این هم خالف مثلا حقیقت اعتبارات قانونی چیه کتاب یعنی چیه قانونی چیه اعتبار قانونی چیه ترابطی که اعتبارات قانونی با هم در اجتماع رو نه خب را از این کتاب سنن نه داره به که قوانین با هم دیگه دارن مث یعنی دقت بکنیم این این طور نیست که در اصول بگیم مثلا به جای موضوع که مدخل مثلا بدن انسان داریم محور داریم محور کتاب و سنت محور هم نداری. طبیعت بحث اصول این طوریه که محور هم نداره دنبال اغراض این اغراض یعنی مجموعه آحادی که به شما در استنباط فیک کمک بکنه و سرایان داشته باشه حالا و نکته دیگری اتعالیشونی کنید نفرموزه ما چند باره محسگلی رو اضافه کنن طبیعت این علوم اعتباری اینه که محدودیت یک که خاصی هم نداره چون دوباره برزی لذا الان مثلا این صحبتی هست که ما فلسطه حصول فقدر رو کنیم یعنی زیر بناهایی که کل اصول رو تشکیل بده یعنی برای اینکه ناظر به کل اصول باشه ما اونا رو قرار بحث سر بگیری مثلا هیئت دیوه شرعی دیوه شرعی در واقعیجوری کار به کتاب و سنت نداشته باشیم حقیقت دیوه عقلی و نسبت اون با ادارات اهلی مثلا نباره. این رو اصلاً هم میگن که مسایل ها حقیقت و عرف چهجره تشلیل و نه این بحثه که اصول است اون زیر کل اصول امقه اعمال کلی اصول رو درستی که اصطلاح هم بشیم فلسفه اصولفه. فیر به قیل از این اصول یک فلسفه اصول هم مثلا هم پای بزاری کنیم جوابش با این توضیحات من روشن شد اون فلسفه هم اگر نازر باشه به همین نکته یعنی یک فلسفه ای روزی بنابرای زیر که برای شما قضرت و برای استنباط احکام رو داشت اون خودش توی اصول دیگه نمو وقتی دنبال اهداف بودیم دنبال اقراض بودیم اقراض شما میتوند در این زمان با یک ترمی مسائل اجتماعی با مسائل جامعه شناسی با مسائل اقتصاد مثلا درها روانشناسی رو به اضافه بکنیم تا در اون اقراض پس نکته اینه که اگر شما بخواید فلسفه اصول فقر رو به یک معنای زیر یعنی به اضافه های کنیم که بارگاه به قدرت شما در استنبا و تاثیر بگذارند در برخورد شما با استنبا تاثیرگذار باشه خودم اصول فقه فلسفه اصول فقه اما ایشون خاصی اصول فقه رو با نه بحث انسان شناسی و راهرو کنید که در جامعه بشر اون چیزی جری بوده مثلا در جامعه اسلام عمر خب افت این رتبه وصول ندید اگه بخوید مثلا برسید تو زاویه انسان شناسی مسائل انسان شناسی مسائل جامعه شناسی مسائل تاریخی مسائل مثلا کیفیت فکرات بشر در اعتباط قانونی مثلا در مسئلیت از این تو بود درستان تو بود درشه این تو در این طب... را با اصول نداره دقیق کردیم پس این پرسته حصول روی این طبیعتی که ما از علم نراه کردیم اون نیازه به جزادانه بحث کردن هم نداره اون خود جزو حصول فرم میشه اگر تأثیر گذار باشه تو استنباه یعنی اگر بحث اون مسائل و حتی از اصطلاح چنین هر مثلا بگیم که در استظهار از لسان روایات و عدل روایات مؤثر باشه اینم جزئی از اصول میشه اینم طبیعتا ولو به عنوان زیربنای انعقاد ظهور و اساس و بنیان به اصصاد ظهور معذره این وارد اصول میشه نیاز نیست توی اصول حتما مسائل مطرح باشه مثلا بگیم علم و حصول نیست که تاهای خواهد که پایز بشن اگر بخواییم خارج بشیم مثلا مبادث منتیکی بیانیم در باب زهور را زیر بناده زهود این دیگه از حصول خواهدیم فلسفه اصول حصول ننفرم نه فلسفه نمیخواد اگر تأثیر گذار باشه و همون زابیه ایست و همون هدف ایست و همون غرف که شما آمدیم حصول را پایی گذاری کردیم این خودش حصول د تاکی زاویه‌تون عوض شده و به اون هدف تاثیر نداره کمک به اون هدف می‌کنه بله این علم دیگری است و غالبا در طرو علم دیگری مثل اونا ثابت میشه این راجع به مطلبی که مرحوم و بلا اشکال که بحث خبر واحد یکی از مسائل بسیار بسیار مهم در سه تا از این ادله اربعه حالا اگه محور باشه هم در کتاب انظر در کتاب تاثیرش الان کمه چون تقریبا ادعای اجماع شده انعواد اجماع مسلمی شده که اگر روایتی باشه که مثلا خونامی اینطور کرن این آیه رو به این اتفاق نمی کنن چون قرآن مشخص شد دیگه بسته شده حساباش مشخصه تأثیر بحث خواهر اما نه اینکه نیست مثلا نقل شده که عمر گفته که عشق خواهشی هدازدنه یا فرجمون همه البته نکالن الله. مثلا آیا بوده بعد مثلا شده علاقت شده اما حکمش مونده مثلا ما هم داریم خیلی عجیبه به سفر راه سریع هم هست به سفر راه سایه هم میگه خیلی هم آیه مثلا تبیری بر کی کی اصلا بقیه آیات ورا نمیونه علیه حال آيا با خبر صحیح میشه آیه رو اثبات کرد اینو داریم ما در اصول فقه این خاص اینه آیه انصافا تاثیر کم داره تاثیرش کم راج به سنت با خبر این تاثیر خیلی زیاده اصل میشه گفت از اول با این شنا بشه که شما فرقش رو دقیقاً اینکه تاثیر تا داره اصل فرق گردن تمام میشن این روایت اینه به عقلم که تاثیر نداره چون هر ادراک بکنید خبر واحد تو مواسه عقل هیچ تاثیر خاصی نداره به اجماع تاثیر داره چرا راجعی به اجماع اهل سنت هم دارن اجماع منقول به قرار واحد و اهل دو همون عدل شاملش میشه مثل این نظام قضالی نمکن که نمکن این هم دارن توی بحث اجماع هست توی این بحث ستایی معروف دارن و توی بحث های که اعز کردیم در قول صحابی دارن چرا؟ و کسی که قول صحابی رو حجت میزونه اینو این رو دارن زیاد هم دارن. این مثل که ما در فقر در روایات داریم از اقلده تو هم از صحابه دارن در این که آیا مثلا اهل مدینه اجماعی کردن اونم داره در این که مثلا در مقداری از ادله در بی‌استثنایی ادله عقلی مثل قیاس و اجماع استصحاب و فرض که مثلا به این که صد درصدیه اینها در تمام اینها خبر تاثیر داره این در اصل در مثل کتاب به خصوص اجماع که هست گفته شده اما تاثیرش خیلی ضعیفه پس بنابراین اگر فقط این این ها ما صحبت بکنیم کاملا راضی که من حس رو خبر وارد نه فقط جزء اصول جزء اممها در حوزه اصوله چون شد این را بعد مرحوم استاد متعرض کلام مرحوم شیخ انصاری شدن که ما چند بار تا گفتیم شیخ درشتن برای اینکه حدیث بشناسیم سه جهت داره یکی سندیه داره که بحث جزء خبر واحدی یکی جهت سندی که و باشه یکم جلالت داره که زبورات و عرفی باشه. وقتی نشان بحث وجوه خبر در بخش صدوره. اصلا که خدمت ما توضیح داریم، کرارا دیگه تکرار نمی‌کنیم، استادان ایشونا مرحوم اینا دیگه هر چیزی رو تکرار کردن. از این که مسائل صدور به نظر ما دو تاست نه بحث خبر فرنات اینا نوشتن. یه روی کار شیعه اینسون این کار نکردن، شیعه میشه. و اون مصدر شناسی ما اسم مسترشناسی بسیم فهرستی یعنی مباحث صدور در شیعه هم فهرستی هم رجالی بحث رجالی و خبر واحد در سنیاست در شیعه فهم میکنی. و بعد از مسئله صدور مسئله متنه که مرحومتش نوردن استاد نوردن و این صافت علمای ما روی متن کم کار کردن و نه اینکه خدای خدایی نکرده دو کم تعریی بشه اعتقادی نداشتن یعنی معنای همینشونه این بود که نیازی به بحث های دقیق راجع به مفمی نیست توضیح دادن قراران میران اینها به متون به لحاظ فتوا بیشتر نگاه میکردن خوب دقت بکنید حالا معنیش فعلیه بود یا تاریخی بود خیلی مولو موقتی نمیشد عمده رو فتوا حساب میکردن نقطه دینششون رو فتوا بود و لذا در کتاب مصادر مثلا حدیثی از کافی میاد برای امام مشخص یا نهرو میگن بعضی هم بین این دو فرق نهرو شاید نزدیک 90 درصد کتاب وسایل مثل او و نهرو هیچ نیست نیست نه مثل و نهرو 90 درصد خیلی بالاست یعنی خیلی نسبت کمی کلامیشان ایشان صادقه لکن این نه به این معناست که ایشان متسامهه یا ایشان منتقد نیست مرموم سال و مثل بقیه نظرش به حدیث بیشتر اون استفاده حکمه از کرد این آیه بروجه که از عواملی که و کار خوبیه یعنی انصافه این کارها فنیه مدارت من خیلی بروجه دید سی سالیشون بعدی از نجف پرگشتن کمی در بودن بعد از این مبانی کاری شدن این سی سالی در بروجه در کنار بودن اونجا فکر یعنی از من ایشون نظرشون این بود که وسائل جمع حدیث بر مبنای فقه و ما نیاز داریم به جمع حدیث بر مبنای حدیث و هر تو صحیحی هست تو توی این کتاب نه بشهر من بعضی از خوابی که ایشان که در حدیث احادیس بودن و کردن که ایشون میگوتم ما باید یک جمع حدیث بر اساس حدیث بکنه نه جمع حدیث بر اساس فقه جمع حدیث بر اساس فقه میشد دیگه خیلی دنبال سه دنبال فتو از را و, احادیث احادیث و ده نظر در است نظر مورد بحث این بود که اصطلاحات موتون است متون الهادی ذکر بشه در متن ثقت می دونید این باید سی باز بشه کردم این مسئله صادر داره حالا تو خود ما الان محترم شده این شیخ انصاری مطلب فهمیدارو خرم هم داره خواهی الهادی تو ذهن حوزه های ما اتکاز حوزه ما چی شده که معنی مونه نیست الان دیگه چه همان سوالی بخواند از رسایلو بعد کلمات های خویش میگه بحث اینجا میشه که رو متن کار نکنن. تاجا. لكن اینا میگن برطرف هم باشیم ما دوباره بحث خیلی بعد مشکل درست میکنی همین مشکل همین. مخام بگن تسامح نیست زیردنای فکریشون میده. و ملتزم من هستن میدونم متنو کار میکنه. بیشتر دنباله ولی ازای این دیدگاه الگوریت دیگهای خوبیه خیلی کار فکر خوبی یعنی اصولاً الان دنیا اینطوریه برای اینکه تحلیل تا که تحلیلی کتاب می‌کنم سعی می‌کنم زیربنای فکرش رو مشخص بکنن این باید روشن بشه مثلا این مؤلف کتاب سال وسائط زیربنای فکریش اینه ممکن است یه تحریری از وسائط باشه دیگه نه ما زیربنای فکری دیگه هم داریم در حاشیه هم متن کتاب هست بهش هم تفکر فکر صاحب وسائل هم میشه هم دین بناهای که در این کارا پیش میاد ببینید که صاحب وسائل رحم حدیث نیست انصافا شما تعجب می‌کنید صاحب وسائل هنوز که آموزه در ابوابش نکات فنی لطیفی داره که تو یا هر حال سم راغ نشه که بازدیدش شکایت و بازدیدش خیلی واقعا سالم زحمت چه چیزا سرات روز روز نیست و مرد مولداری سحر لبنان، عدیب، شاعر، فقی، مولا، احادیث رو سه دور برسایی رو نگاه کرد از اول تا آخر یک عرض نوشتن این مراجعه ثانی هم داشته مراجعه ثالث هم داشته که این مراجعه ثالثش حواشی خوبی نوشته من داد اختلافات النسخ رو این مراجعه ثبوتش رو میشه این نسخ آل, نهل، آل نهل که چاپ کردن هم این نسخ رو با حواشیه سوم میشونه علایانه مرد فوق العاده ای که معنیش تو حدیث سن شاتو حدیث الان بگیرید کتاب وسائل این طور نیست که صاحب و ظرافت رو در احادیث مراعات کرده ما هم اعتقاد داریم که خب بعد اینجوریام افراد آمدن زحمت های کشیده شده ظرافت های دیگه شده بعد از اثرای ایشان روشن شده نه اینکه بخوایم زحمت ایشان رو کم بکنیم. علایه. کیف ماکان این مقدمه را آقای هم که ما توضیحات رو نه از کردیم احتیاج به این بحث نداریم البته جهت صدور در روایات ما تقریبا کم شده چون شواهد نشون میده که خیلی از روایاتی که با اون تقریبه بودن کردن از خواهد. این بحث جهت صدور احتیاج به بحث خاصی داره چون جاش اینجا نیست بعد اینشانلا توضیحاتی رو از این کنم بعد ایشون متعرض این شدن که چطور ما بحث رو از عوارض ذاتی موضوع قرارد موضوع همینه عدله هم, یعنی هم رد ایشون فهمدن بحث این از در ما که آیا سنت یست بود به خبر الوارد هم نه هم لا این چون خبر وارد وجهته حل سنت و ترس بود به خبر الوارد هم لا. این جوابیست که مرحوم شیخ برای اینکه که این بحث داخل بشه و عرض مرحوم مرحوم شیخ این مطلبشون دیدیم و خواستیم وارد بحث باشون بیشترشون قبل از مرحوم شیخ صاحب فصول بهشون جواب دیگه ای داد تو حوزه‌ها جواب صاحب فصول بطره بود چون صاحب فصول می گو ما وقتی موضوع موصول عدله عربه به ماهی عدله نمیشون ماهیریت مثلا ما بحث می‌کنیم که آیا روایتی که به خبر واحد هست سنت میشه یا نمیشه چون ما مرادمون از سنت اون سنت حجت نیست، زاث سنت. این یه جواب بودی تا قبل شیخ تو حوزه های ما مثلا 70 سال، مثلا حدود تقریبا با کم زیادش، شیخ از این راه وارد شد تا یا سنت خاص بود به خبره وارد انداز. اولا وقت بعد از شیخ در کفایه بایه مرحوم ناینی دیگر این کلام شیخ رو اشاره کردن. من جمله استاد، حالا این یه من کلام استاد رو میگم بس یه ارمالند. البته کفایه اول کفایه باید اولی از اولی که رفیع ہے انه انکان المراد هو ثبوت الواقعی مراد ثبوت الواقعی باشه الخارجی فوق بدیہی الفساد معلوم بردن که استاد این بدیہی الفساد ولا یع حس و انو فی اصل المساله فئن الخدره حاکن است و ولا یقر ان یکون حاکن این ایمن الی تحقق خارجه از جزء از دائلات خارجیش باشه ولا یکون ها مراد از شیخ قطعاً که ثبوت واقعی باشه و انکان المراد بواسطه ثبوت واقعی از ذهنی نه خارجی به معنا حصول العلم و سنه فایو معلوم الانفاط این امر قطعاً باطل از خبر الواحد لا یفید العلم و لا یکن هذا ایضا مراد شیخ قدس سره و انکان المراد بواسطه ثبوت تعبدی به معنا تنزیل خبر الحاکی از سنه سنه فی وجود اینه خبر و منظره سنت میشه فل بحث و انها بحث از خبر بحث اون هم این خبر این از برای سه خبر از بحث خبره نه سنت خبر رفتی به سنت چون خبر عامه مثل فرض کن شامل سنت و اخوار و زامر سایت هایی هم میشه دیگه اخصاص به سنت نداره کما هوه ظاهرا. البته من که بارم ارز کردم اصولین متاخره و متاسفانه یعنی شیعه مسلمان اونایین دیگه هم این شرط تو یک محیط محدود تفکرات شیعه موندن اونم توی تفکرات شیعه شامل کلی نیست اینه که استاد فرضاً مراد ثبوت واقعی خارجی باشه حتی ایال تصاعد ولی ثبوت خارجی علمی ثبوت واقعی ذهنی و علمی باشه مفید علم باشه اینم معلوم الانطفاره خب ایشون ملاحظه نفرمایید هر دو ثبوت رو قائل ما داریم در دنیای اسلام ولی در دنیای شیعه شما راجعه نه. اما راجع به ثبوت واقعی خواهم همیشه بس پیشنه حقی مفصل ابن هست در الاحکام مصر ببینه البته عرض کردم چون مرمون استاد رو اعتقاض خودشون مطلب سعیه هم هست اصلا ایشون احتمال نمیدونن استاد شما آن شد داره احتمال نمیدونی که استاد که مثلا خبر سقه انسقه ان رسول الله مصداق آیه مقارکه ناله نزد نزد نزد ناله حافظون ابن حزم این میگه استن تصریح میکنه اینکه اشمونه میگه اینا نه نظر نزدیک این ذکر خود اورانی این روایت استفاده میکنیم فکر میکنم اوسط بذرهشی معنی نمیاد ایشون میگه اصلا این روایت سرایان سرای نبی این همون ذکره و میگه خدا یا معصوم کرده از که ادیانش از من شرایش مفصل چند روزی صحبت کردیم اینا میگن اگر این نباشه سنت نیستی که سنت هم اطلاع همینه. ولذا گایی اوقات در کلمات ابن حضر سبوت واقعی بیده میشه. گایی در کلمات ابن حضر علم بیده میشه. این علم آوره. خبر سرنسقه این آوره. این دوتامتری که یکیشی که فرمونن بدیهی و تساب. یکیشه فرمونن معلوم و انتفاع نه اینطور نیست. و از کنی مفصلم خونده کردیم از, از عبارات مرحوم صاحب و صاحبم تقریبا همی درمیاد جای جایشون میگه که در همین کتبه معتبه هر و هرچی باشه سابقه بشون تصدیق دارم ترجیر شد من رو مصطف شباز جبسته و خیلی جایشون که میگه قطعا حجاته یعنی میگه قطعیه بحثه اصلا میگه ایشون بحث خبر واحد چون بحث خبر واحد بحثی که موبیل زن باشه و محبوب به قرائن نباشه اینا محبوب به قرائن قطعی هستند تصریح میکنه ما اصلا دست حجیت خبر واحد را جی بره باعث اصحاب مطرح نکنیم چون خبر واحد است عاری و خالی از قرینه اینا قرائن قطعی دارن تصریح خود نمی عباراتشون خود نمی کلمه ثبوت به کار برده کلمه را تحت برده البته استاد چون در ذهنیتشون هست که خبر طبیعتاً راست راستان خوبی مطلب شد درست باید ما منکر این مطلب نیستی، ای کسی به شما نگاه در حرم بازه این یه ای حاکیه دیگید برای این بشه بقولی از علت جز از دار نیست درست هست هست باری من منکر نیستم اما در دنیای ایسلام این نیست این واقعیت نداره میگم اصفهانی رئیس مکتب ایسان و خود ابنه هست من رن بازای با استاد با رئیس و مخالفت میکنه به چند نقر از احسانات هم دستاشت که مفید علم خبرواهد یوپید و علم این که ایشون رو معلوم و انتفاق اینه خبرواهد یوپید این روی مبنای خود ایشان و مبنای مشهور علمای ماست و ادلا اخباری های ما هم مخالف هم وقت این نقطه ای رو من عرض کردم چرارن و مرارن و تکرارن معیار در اینکه یک مسئله اصولی بشه یک مسئله از یک این بشه آران شخصیه فرد نیست مثلا بگم من استثاب در احکام کلیه حجت، درم اون بحث استثاب در رسول مدرم شما من حجت نمیدار این ورس نیست مثلا آران فردی که قطعا ثبوت واقعی که نیست قطعا ثبوت ذهنی هم که نیست اون یک از عوارض خبره این درست نیست پس نباید این بحث تو اصولی یعنی این کابی نیست برای. نه همینی که عده قائلن که ثبوت واقعی است همونی که عده قائلن مفید علمه این منشه میشه که اون بحث رو بیانیم معیار خود خطره معیار در بحث علمی این نیست من بگم نظر من اینه این نظر من اینه مسئله ایمی درست نمی کنه وقتی که ببینید البته ما این ما قبول نداریم ما مفید این در نسبت گفت شراران گفت قبول اما این معنشی نیست در دنیای اسلام این مطرح نشده این مطرح نشه دنیای اسلام من میگم لو داخود شراران ابن حزم میگه اندا نه نظر نزد خبر ثقه عن ثقه عن نبی هم مساق اندا نه نظر نزدته و این والا حافظون حافظه ما هم زشون خدا باعث داده خدا اون رو نگه داشته بلزا ارکانی وقتی اقیاتون باشه ادعی مثل ابن حمد ادعی باهرن که مخیر علم قائل قائلا هستند انقلاب تحریفی کنند توضیحشو گذشت دیگه میگه یعنی ما مکلف به احکام بودیم حالا که روایات هست مکلف به روایات شد اصلا ور ما عوض شد ما ای که مکلف باشیم به احکام هم مکلفیم به عمل به روایات دقت بکنید بعد بله آیهی معنای قبول ده ده ما قبول اما این معنی این نیست که بحثو مطرح نکنیم بکنیم. قبول داشتن فرد و عدم قبول فرد این معناش این نیست که مسئله برداشت رو بشه بعضیشون یک کلامی میبارد باقا خودشون مشاهی خنال محققی ممنوعه آی اصفحانی و ما شما سیست اصفحانی نرمون میکنن خلاصه حرفشون اینه من اون حرف ایشان رو هم بر توضیح میدم خلاصه حرف ایشان اینه که ماشون می خایم خبر رو تنظیر سنت بکنیم همچنان اینکه می از این زاویه نگاه بکنیم آیا خبر تنزیلش کردن میشه از اون زاویه هم می نگاه بکنیم آیه سنت تنزیل خبر میشدن اگر از اون زاویه نگاه کنیم اصولی میشه بعد آیه خودی جواب میدن من به خود نهایت و درای مراجعه نکردم حالا مراجعه کردنشون به واقع نقلها خیلی دقیق نیست یه نیم قسم خیلی مولانا رافییشون آی مراجعه کنن در ایشون جواب نه اولا معتقد از ما در جنبه این حکومت ظاهری که تنزیل نیست این هم جوابشون در گفتم که دیگه فضا نخواد بخونید ایشون چون تنزیل نیست و هر شما درسته بحث این نیست بحثی این که در دنیای اسلام تنزیل مطرح شده شما معتقد نیست میشه خوب معتقد نباش شما که ما قبول نداریم تنزیل رو اگر قبول داشتن یک فرض دردن قبول منشه نیست که مسئله ال در علمت رح نشه این که موان تنظیر نیست خب تنظیر براشد این مبنا دارد اما این مبنا در زنیه اصلا مثلش لحق با مرمومه های اسفانی بعد اگه شو می فرماید و علا تقدیر و علا تقدیر تسلیم کار متعلقه از اصولی کیا الزہات نه این درست نیست این دوممی ایشان هم درست نیست انصافاً وقتی که انسان به کلمات و علمای اهل سنت نگاه میکنه و حتی احوال های ما انصافا هم با مرحوم آقای اصفهانی اونا نظرشون بیشتر تنزیل سنته تو اونا نظرشون وقتی که اون سنت نه نمیارن خبر بحث بکنن لذا در بحثای گذشته شما که ما مراجعه میکنم به کلماتی بزرگان در بحث گذشته از کردیم اصلا بحث حجر حبر اینقدر دام شد چون بحثشون این بود که کتاب حسابش معیین کرد مثلا معروف که در بعض از آیات کتاب که شده بود با دو تا خبر نبایید دو نفر باید میکنم این آیات هست این در سال سی تیو دو تیو سی, سی, سی قبلش بعدش این مختلف کتاب معیین شد سنتم اصلا راست میگم و همکم با خدا آشانسته نیست که مراجعه نکرمی کلمات سونیا اون اصلا تمام نظرشون رو سنته ولی دار از که این مثل فخرازی اصلا با تعجب به سید وازده که شما چیونی خبر وازده جد نیست؟ این چی؟ از یعنی اگه, اگه خبر وازده جد نیست ما سنام چکار بکنیم؟ راهی بده سنت نداریم؟ انصاف قضیه این محنم که آیا نظرشون این بوده که خبر مصر یا سنت تصورت خبر خبرتنزیر به خبر شده بیشتر نظر اصولین اهل سنت که این مسئله رو به شدت مطرح هست این درگومیه این یعنی روی سنته اصلا توضیحاتی شده عرض کردیم هدف اصاسیشون اقداعا سنته چون رکن دوم شریعته و این اگر رو حوشن نشه همش بشه به یا باید بگیم به زن مطلع بگیم از با به زن مطلع بود زنده. یا یوا اصلا نیست اصلا سنت است مثلا نظر جور سنت از روی خود در اول کتاب میزان اعتدال زهدی اشکال میکنه چون کنه میگه شیعه است میگه گفت چون جوان شیعه است ما حدیث قبول میکنیم اینطور میشه چون صاحب بدعت شیعه هستند بعدش میگن بلعت صغرا داریم بدعت کبری داریم بدعت صغرا و تقدیم نیست کاری به نظریه محمدی که مثلا ابو بکر عمر هم این شیکی میگن در بعد ایشون میگه که ما در میان روایات زیاد داریم شیعه دین معنای بدعت سغرا شیعه که علی رو بدن بعد ایشون میگه اگر بنا بشه روایات اینا رو حذف بکنین لا ذعب جمله من الاثار النبوییه و بعد این مقصودشون بدینفتی یعنی اشکال دقتم یعنی درشون نیست که کل روایات شیعه هست رو کنند بعد با هر واقعیتی رو وروسه که اگه داره حذف می‌زارن خیلی تنده قرار میشه که مناسبی هست این روایات رو به نواصب عشره یعنی ایشون یعنی میگه ماده رو میخوان حذف شده خبرش کلا رد میشه خب نمیشه ببینید لذهبت جمله منل آثار نبویه پس نظر و آثار نبویات نه خبر و ببینید هوذی مخصوصاً تغییرتون که شریعت بدی همشه تعبیر یعنی تمام نکته اساسی بحث حجیت خبر نظر به سنت بود اساساً نظر به سنت بود از سنت به خبر متوجه شد صلى الله على محمد الواضح